2008. به این سرنخها توجه کنید وقتی شوهرتان به خانه آمد کت و پیراهنش را وارسی کنید اگر به عطری غریبه یا لکه آرایش برخوردید حق دارید شک کنید این را سایتی اینترنتی به اسم آنچه زنهای متعهل باید بدانند نوشته بود. به خصوص به لکه روش توجه کنید. در آخرین روز ماه مه، الا روبینشتاین در خانهش نشسته بود. ملت عشق را که تا آن موقع می خاندهش کناری گذاشته بود و مشغول جواب دادن به سآلهای تستی بود، که در سایتی اینترنتی به آن برخورده بود چطور در ده سوال بفهمید شوهرتان به شما خیانت می کند یا نه سوالها خیلی ساده و پیش پا افتاده بودند اما باز هم نتوانسته بود جلوه خودش را بگیرد و جواب ندهد با آنکه تست های مربوط به روابط زن و مرد به قایت سست و چمایه بودند الا دیگر میدانست که خود زندگی هم گاه ممکن است حد اقل به همان اندازه سست و چمایه باشد به تجربه اثبات شده بود پس از تمام کردن تست باید امتیازها را جمع می‌بست و به نتایج نگاه می‌کرد اما این کار را نکرد ادامه نداد با آنکه سوال را مشتاقانه جواب داده بود، دوست نداشت از دهان کسی دیگر یا بدتر از آن از دهان سایتی اینترنتی بشنود که شوهرش به او خیانت کرده. درست همانطور که دوست نداشت درباره این موضوع با دیوید صحبت کند. هنوز حتی نپرسیده بود آن شب که خانه نیامده بود، کجا مانده بود؟ این روزها بیشتر وقتش به نوشتن گزارش درباره عشق می‌کوزشت. این قصه خیالی که کوچکترین ربطی به زندگی خودش نداشت، به شکلی عجیب دربرش گرفته بود. موقع خواندن رمان زهرا، گوشی دنج پیدا می‌کرد و بیان که به مسائلی فکر کند. که ذهنش را درگیر کرده بودند، آرام آرام با جریان داستان پیش می رفت و آرامش پیدا می کرد. بقیه چیزها در زندگی روزمرهش تکراری بود. وقتی بچه ها آن و بر بودند، زن و شوهر طوری رفتار می کردند، انگار همه چیز روبراه است. غیر ارادی نقش بازی می کردند. اما وقتی تنها می خیلی زود معلوم می میانشان میانهشان شکراب است. الا بعضی وقتها مش دیوید را می که با دقت شاید هم با حیرت نگاهش می‌کرد. انگار سعی می بفهمد چطور می شود زنی از شوهرش نپرسد شب را کجا گذرانده؟ حالانکه که سآل نپرسیدن الا از دیوید علتی داشت. نمیدانست با جوابها چطور سر کند. دانستن چیزی که نمیدانست با آن چه کند به چه کارش می آمد. در مورد چیزهایی که نمیخواهی بدانی، هر قدر کمتر بدانی، همانقدر قدر کمتر دلت به درد می آید. همان قدر هم کمتر عذاب میکشید. این طوری که به قضیه نگاه کنی نادانی آن قدرها هم بد نیست تنها اتفاقی که ممکن بود این خوشبختی ساختگی را متزلزل کند شب سال نو گذشته رخ داد الا میان نامههایی که پستچی آورده بود تصادفاً چشمش به پاکتی افتاد چرویش مهر هتل خورده بود بازش که کرد با چیزی روبرو شد که اصلا انتظارش را نداشت مدیر خدمات مشتریان یکی از هتل‌های اطراف از دیوید روبینشتاین پرسیده بود از اقامتش در هتل راضی بوده است یا نه پرسشنامه‌ای نیز به پیوست فرستاده بود الا طوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، پاکت را روی میز گذاشت. شب که دیوید نامه را باز کرد، داشت می‌خواندش، او هم از گوشه‌ای تماشایش میکرد. بی آن که سؤالی بکند یا نظری بدهد. دیوید نامه را کناری گذاشت و گفت: همین یکی را کم داشتیم. انگار من بیکارم. بعد لابد حس کرد باید توضیحی بدهد چون اضافه کرد پارسال توی این هتل کنفرانس دندانپزشکان برگزار کرده بودی. پیداست شرکت کننده ها را وارد لیست مشتریها کردند الا باور کرد چون میخواست باور کند آن بخش وجودش که از گلالود کردن آبهای راکت میترسید فورا فوراً این توضیحات را قبول کرده بود. اما بخش دیگر وجودش قانع نشده بود. در شک و دودلی مانده بود. آخر سر تسلیم کنجکاویش شد. از دفتر تلفن شماره هتل را پیدا کرد. به پذیرش زنگ زد، و چیزی را که خودش هم حدث میزد از آنها شنید. نه امسال در آن هتل کنفرانس دندانپزشکان برگزار شده بود نه نپاررس. خیانت شوهرش به او باعث میشد احساس حقارت کند. از طرف دیگر خودش را مقصر میدانست. از دست خودش عصبانی میشد. دیگر نه جوان بود. نجذاب در شانزده سال گذشته خیلی چاق شده بود و به خودش نرسیده بود هر ماه که میگذشت گذشت کمتر و درخشندگیش کم سوتر می کلاس های آشپزی که هفته یک بار می رفت، کم کردن اضافه وزن را به کاری شاق تبدیل کرده بود گرچه در کلاس آشپزی خیلی زنها بودند که آشپزیشان از او خیلی بهتر بود و اصلا هم اضافه وزن نداشتند هر وقت یاد ایام بچگی و جوانیش میافتاد میدید که هیچ وقت اسیان نکرده طبیعتش اینطور بود نرم ملایم مثل فرنی حتی در اوج جوانی هم که خیلی جوانها خیلی دیوانگی ها می کنند، یک بار نشده بود با دوستهایش مخفیانه جایی برود و سیگاری بکشد یا مست و لایعقل از بار بیرونش کنند. هیچ وقت آشق مردهای ناجور نشده بود. روابطی که باعث پشیمانی بشود از سر نگذرانده بود. مجبور نشده بود قرص ضد حاملگی بخورد. هیچ وقت دچار بحران روحی نشده بود. عصبانیت آنی به سراغش نیامده بود. داروی ضد افسردگی نخورده بود. هیچ وقت به مادرش و معلمهایش دروغ نگفته بود. از کلاس جیم نشده بود. تجدیدی نیاورده بود. سال آخر دبیرستان که خیلی از همکلاسی درب در به در به دنبال کلینیک برای کورتاج می او تمام این تراجدی را از دور تماشا کرده بود. انگار که دارد فیلمی مستند تماشا می کند. دیدن بحرانهایی که هم سن و سال درگیرش بودند مثل تماشا کردن گرسنگی مردم اتیوپی در تلویزیون بود. از بلاهایی که به سرشان می آمد، ناراحت می شود. حتی بعضی وقتها خودش هم می خواست دست به ماجراجویی بزند. اما در نهایت معتقد بود خودش متعلق به عالمی دیگر است. هیچ وقت به مهمانی های آنچنانی نرفته بود. از وقتی دختر جوانی بود ترجیح میداد جمعه شبها به جای آنکه بیرون برود و قاطی مردم بشود توی خانه بماند روی کاناپه دراز بکشد و کتاب بخواند. زنهای محله همیشه از دخترهایشان میپرسیدند چرا از الا یاد نمیگیری؟ ببین چقدر آرام و سرربزیر است؟ اصلا خودش را توی دردسر نمیاندازند مادرها الا را ستایش میکردند اما هم سن و سالهایش چشمشان که به او میافتاد تنشان کهیر میزد از نظر آنها الا گوسالئی بود که تفریح سرش نمیشود و فقط کتاب خواندن بلد است برای همین هیچ وقت دانش آموز محبوبی نبود. حتی یک بار یکی از همکلاسی به او گفته بود. می دانی مشکل تو چیست؟ زندگی را آنقدر سخت می گیری که روحت پیر شده. سالها آرایش موهایش را عوض نکرده بود. موهایش بلند، صاف و برنگ اصل بود. بیشتر وقتها با یک گیره محکم جمعشان میکرد یا اینکه از پشت می بافتشان. آرایشش همیشه ساده بود. دوست نداشت توی چشم بیاید. تنها چیزی که استفاده میکرد رژلب قرمز قهوه خفیف بود و مداد چشم سبز روشن که از نظر دختر بزرگش به جای آنکه چشمش را درشتر نشان بدهد میکردش عین کورها راستش الا تا به امروز نتوانسته بود با مداد چشم دو تا خط متقارن بکشد. همیشه به اشتباه خط یکی از چشمهایش را کلافتر میکشید. اعتقاد داشت همیشه کارهایی را نابجا انجام میدهد. در کارهای اطرافیانش یا زیادی مداخله می کرد مثل موقعی که شنید جانت تصمیم گرفته ازدواج کند یا زیادی آرام و منفعل می شد مثل واکنشش به زیر آبی رفتن شوهرش در یک طرف الایی بود که مثل دیوانها در کارهای دیگران دخالت می کرد و آنها را زیر نظر داشت، در طرف دیگر هم الای صبور و آرام و پسیف. انگار خودش هم نمیدانست هر یک از آنها چه موقع خودی نشان میدهد الای سوامی هم بود. الایی که بی سر و صدا در گوشه ای می نشست و تماشا می کرد و منتظر بود عجلش برسد. همین الا بود که الان در مخفیگاهش شروع به جنبیدن کرده بود و آماده میشد به سطح بیاید و اختار میداد اگر همین طور ادامه بدهی سیستمی که درست کرده ای روزی فرو می ریزد مسئله آن و دمی بود میدانست دانست اللا در آخرین روز ماه مه به اینها فکر می کرد کاری را انجام داد که خیلی وقت بود فراموشش کرده بود. دعا کرد خدایا میدانم زمان زیادی است به درگاهت دعا نکردم. راستش مطمئن نیستم هنوز به حرفهایم گوش می کنی یا نه اما حال و روزم را میبینی. حالتم است. به من یا عشقی حقیقی بده تا از این دلزدگی و فشار نجات پیدا کنم یا کاری کنچنان بی احساس بشوم که بی عشق زندگی کردن برایم مهم نباشد ایستاد آب دهانش را گورد داد و با صدایی خفه گفت منتها هر کدام را که می خواهی انتخاب کنی، لطفا کمی زودتر. می دیگر چهل ساله شدم، جوان حساب نمی شدم. این آخرین فرصتم است. یا عشق را یادم بده، یا ناراحت نشدن از نبود عشق را.